خداوند جان و خرد ارستنام عربان و یزمیده بر روان درگذشتگان درود باد بر روان عشود در تشت اسپنتمان درود باد بر روان پاک همه نیکان و پاکان جهان از که تا به و شانس فیروزگر درود باد بر روان شهیدان و جانسپاران راه دین و کشور درود باد امروز روز ارمزد و ما روز یادآوری از روان درگذشتگان ایران بعد از حمله اعراب تا حالاست و روز عورمزد و تیرما روز یادآوری روان درگذشتگان از کی و تا پایان سلسله ساسانی این روز روز عزاداری نیست روز و زاری نیست روز یادآوری از روان درگذشتگانه در کیش زرتشتی گریه و زاری برای, گر... برای درگذشتگان کار ثوابی نیست ما باید بدانیم همان همانجوری که متولد شدیم روزی خواهیم مرد پس مرگ داد است یک نوع دادگری پروردگار است و یکی از شرا میفرماید اگر مرگ دادست و بیداد نیست پس از مرگ این داد و بیداد چیست. گریه زاری نشانه این است که ما از کار خدا راضی نیستیم. او به ما جان میدهد و جان ما را هم به موقع خودش می گیرد. از این جهت در این روزها ما باید فقط یادی از درگذشتگان بکنیم و تا اون جایی که از دستمان برمیآید وسیله خوشبختی روان اونها را فراهم کنیم. یکی از شورای معروف ما، پیروز پور کابوس به مناسبت پرسه عمومی مناجاتی سروده که البته امروز اون بخشی که از کیومس شروع میکنه تا زمان پایان ساسانیان من ذکری نمیکنم چون اون در پرسهٔ تیرما باید خوند ولی آغازش اینجوره جوانا دلن در سرای دو در چه بندی چو باید شدن زو به در جهان همچو خان دو دروازه دان اینجا خان یعنی خانه جهان همچو خان دو دروازه دان نماند کسی اندرو جاودان. دان چو از اولین در برفتی درون دیگر درد رفت باید برون نگه کن به شاهان پیشینیان که اکنون نمانده از ایشان نشان و اما کجا شهریار زمان که بودش گل و دین و تخت کیان بکشتند و انداختندش نگون تنه شاهوارش به آب اندرون به دست یکی بنده نابکار روانش بشد سوی کردگار روانش روان شد سوی کردگار جهانا ندانم چه داری نهان که با کس نباشی به دل مهربان حالا این مرگ و نیستی را در فرهنگ ما ایرانیان یک نوع جبر طبیعت میدونیم در فرهنگ ایرانی و دین زرتشتی این دنیا مخلوطی است از خیر و شر و ما باید به طرفداری از خیر بر علیه شر قیام کنیم و وقتی شر را مغلوب غیر کردیم اون وقت رستاخیز پیش میاد اون وقت سراسر دنیا را نیکی و خوبی فرامی گیره ما عقیده داریم که سوشیانت موعود آینده زرتوشت وقتی با ای از جاودانی ها میاد اینا نمیان دین تازه بیارن میان دل و را برقرار میکنند. حالا این و داد یکی از بردشیان در عشر ساسانی از موبدی میپرسه؟ که این سوشیان کی میاد و وقتی میاد چه کار میکنه دیگه حاله ها بنا نیست بیاد دیگه چرا دیگه برای که به قول معروف 124 هزار پیغمبر اومدن بشر حرفش پیغمبرشون رو از این گوش شنیدن و از این گوش بیرون کردن هیچ کدام پیرو اصول دین پیغمبرشون نیستند همه چسبیدن به فروات دین به تشریفات ظاهری دور هم جمع بشن اگر خوشبینن میرخسن و شادی میکنن و جشن میگیرن اگر بدبینن میشینن گریه و زاری میکنن و اصول دین را همه فراموش میکنن پس این سوشیان از پیامبران دیگه پند گرفتن و می اگه اونام بیان و حرفی بزنن کسی گوش حرفشون نمیکنه. اما اونقدر سر دین و ایمان و مذهب باید بجنگیم تا دیگه یونمون به لب رسیده باشه و حاضر خواهیم بود که حرف موعود آینده را بشنویم به قول شادروان مولانا میگه از کرم دون آنچه میآزاردد تا به تخت معرفت بنشاندد یعنی هرچه ما را در این دنیا عذیت میکنه از کرم و لطف خداه چرا تا به تخت معرفت بنشاندد تا به عقل بیاییم اون وقت که به عقل آمدیم این سوشانت میاد و میدونید چه کار میکنه او میاد و تمام بزرگان دین یک تا پرستی را جمع میکنه و به همه اینها میگه ای مردم مگر همه نمیگید خدا یکیه همه میگن بله دیگه مگه نمیگید پیغمبر شما رسولی از جانب پروردگار همه میگیم بله دیگه مگه نمیگید فرمان خداوند با خوشبختی و کامروایی و سعادت بشر باید باشه همه میگیم چرا بگه پس چرا عشم خدا پرستی رو دینتون برداشتید همه اسم پیغمبرتون گذاشتید رو دینتون که البته پیغمبر پرق میکنه در هر کشوری پیغمبری باید به زبان اون قوم پیدا بشه درد قوم را با زبانشون بشنوه و دباشم با زبان خودشون بده و هیچ دینی موفق نمیشه جهانگیر بشه چرا برای همین روح خودخواهی بشر همه میگیم دین ما بالاترین دینه ما فقط بهش میریم نماز ما فقط قابل قبول پروردگاره و تا این عقیده داشته باشیم خوشبختی برای ما روی نخواهد آورد و باید بدانیم که پیغمبرها با هم فرد دارند، کتابشون فرد دارن نمازشون فرد دارند، ولی اصول دین همه یکیه و اگر حاضر باشم این را بپذیریم خوشبختی و سعادت برای بشر پیش میاد وگرنه همین همین آشست و همین کاسه سر اندک چیزی چه خونهایی میریدیم همون بیت المقدس که قبله یهودیا، مسیحیا و یازده سال اولیه اسلام بوده سر همون قبله عمومی چه خونهایی ریخته شده موسی وقتی قوم خودش را از مثل فراری داد و آمد بیاد به عرض موعود یعنی بیت المقدس اون موقع حکومت بیت المقدس در دست یک قوم دیگر یهودی بود که هنوز مباهد نشده بودند به نام کنانی ها و یهودی ها چل سال جنگیدن تا بالاخره کنانی ها رو شکست دادند و خودشون مسلط شدن بر بیت المقدس بعدن نبوکدنصر آمد پادشاه بابل قوم یهود را به اصارت برد به بابل هفتاد سال در اصارت بابلی بودند تا اینکه کورش گذار قانون عمومی بشر اینها را آزاد کرد رفتند به کشور خودشون این پولی هم که نبوکد نسر آورده بود به بابر کورش به اینا پس داد که برن موابد خودشون را دوباره تعمیر کنند. بعدن وقتی مسیحی آمد چندین سال مسیحی ها و یهودی ها با هم مسیح ها مسیح هم یهودی بوده در بیت المقدس متولد شده چرا قبل... چ... نمیگذارید قبل مام باشه و چندین سال جنگیدند تا بالاخره پاپ تمام مسیحیای اروپا رو تجهیز کرد و آمدند جنگیدند بر یهودی ها و اونها مسلط شدند و شد قبله یهودی ها و مسلمانان ها و ها نردو بعدا اسلام آمد و پیش از اینکه قوم قریش در مکه مسلمان بشه برای عرب مسلمان شدن ولی چون قبله سابق را محمد قبول نداشت، او بیت المقدس قبله هست ولی یهودی ها و مسیحی ها با هم متحد شدن و نگذاشتن و دیویز سال جنگ صلیبی بین مسلمان ها از یک طرف و یهودی ها و مسیحیا از یک طرف تا اینکه افتاد دست مسلمی حالا هم باز میبینیم یهودی ها و مسیحی ها یک طرف با اسلام سر همون بیتر مقدس باز می جنگن. پس سر چیزی که نکته حساس هر مذهبه یعنی قبله ببینید چه خونهایی ریخته میشه. از این جهت یکی از شورای ما دعایی کرده و به شعره که بنده در حضور تان و امیدوارم روزی برسه که نصیحت و اندرز این دانشمند و شاعر ایرانی به حقیقت پی بنده اثر فر احمد فاضل اسمش خداوند جهان را خالی از خوف و خطر گردان بشر را نیت خیری دده فارغ ز شر خداوندا به دست بندگان سولجوی تو بلای جنگ هرگه رو به ما آرد تو برگردان خداوندا به نیروی ادالت گستران خود بنای ظلم را هر جا بود زیر و زبر گردان خداوندا، صلاح آتشین را پیش از آن روزی که دنیا را به خاکستر نشاند بی گردان خداوندا جنایت پیشگان و جنگ جویان را برانداز از جهان یا خادم نوع بشر گردان خداوندا برای اهل عالم زندگانی را رضایت بخش و با آرامش و بیدرد سر گردان خداوندا ز دلها بیخگین بیخکین را برکن و خداوندا خداونداز دلها بیخ کین را برکن و آنگه به جایش بزر مهرفشان و آن را بارور گردان خداونداز به فاضل در رحت توفیق خدمت ده به دین تشریف عالی قدر او را مفتخر گردان و همه دعا می کنیم که روزی بشه بشر دست از این خودخواهی و خودپرستی برداره دست از این جنگ و خونریزی ها و این های آتشینی که روز به روز خطرناکتر میشه مبادا روزی اینها را بر کشور ما سوار کنه و کشور ما را زیر و زبر کنه از این جهات از ارواح درگذشتگان، از شاهان و بزرگان و شاهران و شهیدان و جانسپاران راه ایران خواستاریم که در عالم معنوی جلوه این بداموزی که در بین بشر روایی داده بگیرند و کاری کنند که دنیا پر از خوبی و خوشی و مهر و آسایش کردند ایدون بار حتی ما میدانیم در زمان ساسانیان که مذهب رسمی زرتشتی شد و گفتند فقط فرمان روایی لشگر به کسی میرسه که زرتشتی باشه وزیر کسی میتونه باشه که زرتشتی باشه کارهای عمده کشی میتونه احتدار باشه که زرتشتی باشه در نتیجه ادهی ای از ایرانیانی که هنوز زرتشتی نشده بودند برای گرفتن شغلهای بالا آمدن در ظاهر زرتشتی شدند مثل مهر پرست ها، ناهید پرست زروانی و ماننده ایران و اینها وقتی وارد دین شدن بسیاری از آداب و رسوم و قوانین گذشته خودشون را وارد دین زرتشتی کردند و بیشتر این احکام در کتابهای پهلوی نوشته شده مثل بندهش دین کرد همین طور های دیگر کتابهای پهلوی اگر بخوانید و میبینید بعضی از این احکام کاملا مخالف دین زرتشتیه ولی اینها وارد دین کردند و بعداً باعث شد که یک ادهی تومت به ما بزنند و خیال کنند اینها در واقع کتاب های دینی زرتشتیانه یکی از این کتابهایی هایی که آوردند وندیداد بود وندی داد در اصل وی دیو داد بود وی دیو یعنی مخالف دیو بدون دیو داد یعنی قانون وی دیو داد یعنی قانون ضد دیو و میدانیم پیش از اشو درتشت یک عدهای از ایرانیان بر علیه دین که كه هندی ها دارند و هندی ها و ایرانی ها از یک نجات هستیم اونها دیوپرست بودن و خدایانشون به نام دیو معروف شد ای از ایرانیان بر علیه دیوپرستی قیام کردند و قوانینی که درست کردند شد قوانین ضد دیو البته در اون زمان به سطح فکر مردم به وسائلی که در دسترشت مردم بود این قانون در زمان خودش بسیار درست و صحیح بود زیرا وقتی یک دانشمند یا یک رهبر قومی یک قانونی برای اجتماع درست میکنه اون قانون در اون زمان و در اون مکان خیلی خوبه قابل اجراست مثلا میدانیم ایرانیان یعنی قوم آریان از سرمای شدیدی که در ایرانویج یعنی سرزمین اصل ایران به وجود آمد و به طوری که وندیداد میگه ده ماه در سال زمین مستور از یخ و برفه و فقط دو ماه هوا ملایمه این دو هم به اندازه نیست که یخ و برف آب بشه حالا اگر کسی در اون موقع می مرد، در اون محل نمیشد زمین یخ زده را بکنن و مرده را دفن کنن و اگرم هم دفن میکردند که مرده را در یخچال بگذاری در فریزر بذاری متلاشی نمیشود پس بهترین را و عاقل دالتانه این راه این بود که در بالای کو در معرض دید لاشخور ها قرار بدن و تنها راهی که در نظر بود همین بود یه ادهی می اومدن مرده را می که مشه هندی ها که هنوزم ادامه داره پس این قانون در اون زمان بسیار خوب بود ولی قانونی که برای اجتماع درست میشه، با تغییر زمان و مکان باید عوض بشه و اگر عوض نمیشه اون اجتماع و اون دین را عقب میندازه. یکی دیگر از چیزهایی که در وندی داد ذکره و ما امروز خیال می‌کنیم چیز بدیه و دیگران به ما تومت میزنند این بود که میدونید در قدیم با و تاؤن و اینجور چیزهای زیاد در هر دو سال یه دفعه هر سه سال یه دفعه شایه می شود. و تعداد زیادی مردم در اثر این گونه امراض مشری از بین می رفت حالا اینا می فکر چاره باشن یک چیزی که ضد افونی باشه به کار ببرن حالا اون زمان چی بود؟ پجاو بود پادیاب زیرا همه کشاورز بودند به تجربه دریافته بودند که بسیاری از امراض در خونه که گاو نگهداری میشه نمیرسه و این بود که کشی که خدا بیا مرده میشد وبایی یا تاون یا چیز دیگه اینها اول بدن اون مرده را میشستند که اگر مطفوعی چیزی از بدن جدا بشه ضد و فونی بشه و اینهایی که زیر تابوت مرده میرن بهشون اثر نکنه و این شد وسیله ضد و فونی کردن دیگه بالاتر از این نداشتن ولی امروز با تغییر زمان و مکان ما وسایلی داریم بسیار کارگرتر از اون پادیابه. پس اگر کسی بگه چون نیاکان ما بر در هنگام شستشو یا تطهیر بدن اونو به کار می بردن و امروز صابون نباید به کار ببریم این آدم زردشتی نیست احمقه و نباید توجهی به او داشت یکی دیگر از چیز همون ششور یا سیشور یا نشوه بود که در بندیدار ذکره در موقعی که وبا و تاون و امراض مصریه پیدا میشد در شهر، می میبایستی همه از همدیگر جدا زندگی کنیم و بدن را با سه چیز بشوییم اول با پادیاب دوم با خاک و سوم با آب که در اسلام با خاک بهش میگن تیمم اونها به کار میبرن پس میبایستی بدنشون را با سشور بشورن تخت خوابشون جدا کنن غذا تو ظرف جداگانه بخورن در یک ظرف همه خانواده با هم غذا نخورن مرتب نظافت بکنن و در داخل کشور برای که خانواده سرایت نکنه اگر یکی این مرض گرفته شد پس از هم جدا زندگی میکرده اما وقتی از یک کشور خارج مثلا هندوستان یا پاکستان که اکثران در اون مواقع اون امراض مصری وارد میشد در مرز مسافرینی که از اون شهر میومدند وارد کشور بشن، تا نه شبانه روز قرانتینه میکردند یعنی میدونیم اکثر امراض مسریه دوره کمونشون نه روزه نه شبانه روزه مثلا سرماخوردگی سه روز بعد اثر میکنه فلون مرض چار روز بعد فلون مرض پنگ روز بعد و اکثر امراض مصری خطرناک حد اکثر نه روز معلوم میشه که آیا این وبایی هست تا اون داره یا نه و موقعی که به مرد میرسیدن میبایستین سشور بشن تمام لباساشون دود داده میشه در یک اتاقکی لباساشون لباسهاشون میشه و با سه تا چهار تا چیز از جمله اسفند و رو این چوب خشک که گاهی هم در قدیم رو آتش میگذاشتیم و اینها دود می‌کردند و لباس و وسایل مسافر را گنجدایی میکردن و بعد از نه روز اگر مریض نبودن میذاشتن وارد کشور بشن اگر نه یا بر میگردوندن یا همونجا میمردن و دفنشون میکردن مثلا لباس شستن قدیم یادتونه با گل سرشور تن را میشستیم سر میشستیم و لباس پاک میکردیم بعدن اشنو و چوبک تو کار اومد بعدن این سابون سفید دراز بوگندو امروز چیه گرد؟ شستشو لباسه حالا اگر کسی بگه نه من میرم همیشه با گل سرشور تنم میشورم برای که ممث من, من با مث من نیاکان من با گل سرشور در صورتن میشستن با گل سرشور لباس میشستن یا با اشنو و چوبک لباس میشستن و اگر بیاییم با اون گرد رخشویی بشوییم گناه آیا این آدمو شما آدم سالمی میدونید؟ آدم عقلداری میدونید؟ میگید نا این آقا خره بلش کن اون هنوز مثل که 100 سال پیش داره زندگی میکنه پس بشیاری از کارهای ما هم در زندگی همینجوره. قوانینی که برای اجتماع درست شده با تغییر زمان و مکان اجتماع باید عوض بشه و اگر عوض نمیشه اون ملت عقب میفتن اون دین عقب میفته اون قوم عقب میفته و نابود میشن و یکی از علل بقای مازردشتیان اینه که قانون خداییه که هر چیزی که از فایده و هستی افتاد باید نابود بشه یعنی وقتی جان از تن آدم بیرون رفت این دیگه این تن فایده ای نداره خدا طور قانون درست کرده که اون تن نابود میشه هر چه بخواهن نگهش دارن نمیتونن پس خداوند ما را زنده نگه داشته برای که یک خاصیتی در ما دیده خاصیت سنا پیروی از فرهنگ عالی نیاکانمونه و اگر اون فرهنگ را از دست دادیم نابود میشیم خداوند ما را نگه داشته تا وارث اون ارسیه بزرگ باشیم که به دیگران بنمایانیم شاعری میگوید بساطیر و دیماه و اردی بهشت بیاید که ما خاک باشیم و خشت زمانی رسم بر این بود که هر اتفاقی ام از خوب یا بد برای شخصی پیش میآمد این را منتصب می به دهر و روزگار و غذاب و قدر و شانس و اقبال و مانند اینها و یکی از مذاهب ایرانیان باستان پیش از عشوزرتوشت همین مذهب زربانیگری بود زربان در اوستا بارها آمده در نماز جسمیبنکه میگیم زربانه اکر زربانه درق و خداته زربان یعنی روزگار یعنی در یعنی شانس و اقبال و یک زمانی این عقیده در بین اکثر آریا ها ایشایع بود و هر ملتی که بیشتر مورد حمله و هجوم مردمان وحشی و خونخوار و گرسنه باقی می میشد و بالاخره به شکستش منجر میشد این را مینداخت به گردن غذاب و قدر همین خیام میگه تقدیر به ما هران چه بایست بداد خون خوردن و کوشیدن ما بیهوده است این بود نصیب ما دوران غذا ما را چه گناه قسمت ما این کردند؟ یا حافظ میفرماید جام می و خون دل هر یک به کسی دادند. در دایره قسمت اوضا چنین باشد یا بر عمل تکیه مکن خواهجه که در روز ازر تو چه دانی قلم سون به نامت چه نوشت با سعدی میفرماید اگر محول کار جهانیان نغذاست چرا مجاری احوال برخلاف رزاست غذا دیگر نشود گر هزار نالب و آب به شکر یا به شکایت برآید از دهنی گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه به آب زمزم و کوسر سفید نتون کرد اگر به هر سر مویت هنر دست باشد هنر به کار نیاید چه بخت بد باشد اینا همه اشارشون به طرفتاری از غذا و قدره ولی میبینیم همین اشخاص در موقعی طرفداری از غذا و قدر کردن ولی همین در مواقع دیگر مخالف اون بودند مثلا خیام باز نیکی و بدی که در نهاد بشر است شادی و غمی که در غذا و قدر است با چرخ نکن حواله کندر رأی عقل چرخ است و هزار بار بیچاره تر است یا سعدی از دست دهر دون چه شکایت کند کسی کو خود به دست خیش زند قفای خیش راه است چاه و دیده بینا و آفتاب تا آدمی نگاه کند پیش پای خیش چندین چراغ دارد و بیراه می رود بگذار تا بیفتد و بیند صدای خیش یا شادروان پروین اعتصامی میگه دیوانگیش قصه تقدیر و بخت و شانس از بام سرنگون شدن و گفتن این غذاست میجوی گرچه از متوزمیجویی گرچه از برتر است. میجوی یعنی کوشش کن میجوی گرچه ازم تو زندیشه است میپوی گرچه راه تو در کام اجده ولی باز میبینیم یه عده وسط این دو باز عقیده دارن اخگر میفرماید در این ظلمت سرا فرزند آدم فراوان زد از این چونو و بسی فریاد از این غمها که دیدند، چو نامت پاسخی دم در کشیدن. کسی که این چرخ بیچون نقش بسته است از این چون و چرا برتر نشسته است یا باز خیام میفرماید ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی آن موز بود لطف و عطای تو کجاست صد سال به امتحان گناه خواهم کرد تا جرم من است بیش یا رحمت تو از گردش چرخ هیچ مفهومم نیست جز رنج زمان هیچ معلومم نیست هر چند به کار خیش در مینگرم عمری بگذشت و هیچ مفهومم نیست اما هنگامی که توش به پیامبری برگزیده شد فرمود همان طوری که در این دنیا خیر و شر مخلوطه و ما باید به طرفداری از خیر بر علیه شر بجنگیم و تا وقتی شر را به کمک خیر خنسا کردیم یا از بین بردیم اون وقت رستاخیز پیش میاد اون وقت سراسر جهان را نیکی و خوبی فرا می گیره. همین طور هم در این دنیا هم جبر است و هم اختیار جبر روزگار یعنی چه؟ یعنی ما به میل خودمون تو این دنیا نیامدیم ما را آوردن به میل خودمون هم نمیریم کسی نمیگه چند سال شد میخوای بمیری بحار بمیری، تاگستان بمیری هر وقتی پیمانه عمرمون تمام شد ما را میبرند. کدوم کدون کشور متولد بشیم دست خودمون نیست کدون دین متولد بشیم دست خودمون نیست کدون خانواده متولد بشیم که مزایا و به اون خانواده عرض ببریم دست خودمون نیست ولی هنگامی که از این عقل و خردی که خدا به ما داده استفاده کنیم میتونیم بر جبر طبیعت به کمک عقل غلبه پیدا کنیم در این دنیا همانطوری که کوههای سرشار از سبزه و خورشید تابان و ماه درخشان و میوههای فراوان هست از یک طرف میکروب ویروس وارشوی سمی، اشراط موزیه، حیوانات درنده، زلزله، آتشفشان و هزاران آفات ارضی و سماوی دیگر هم در برابر ششم ما وجود است. حالا اگر بگیم همه این چیزها خواست خدا بوده و ما باید تسلیم بشیم در برابر خواست خدا این هم سلا نیست. یکی از عرف میگه اگر از کوه فروغ تداسیه و سنگی نه عرف که از راه سنگ برخی زد یعنی اگر از کوه سنگی داره میاد پایین میدونی که میخوره بد تو باید قبول کنی که خواسته پروردگار بود در نتیجه میاد میخوره رو نابود میشی و اگر این عقیده باشه بشر نابود میشه ولی ما دیدیم وقتی میکروب به ما حمله کرد مریض شدیم ما عقل رو به کار بردیم دکتر درست کردیم دوا درست کردیم هم برای بشر هم برای حیوانات هم برای گیاه ها. این چیه؟ این قلبه بر جبر طبیعت به کمک عقل ما مثل پرنده بال نداریم در هوا پرواز کنیم ولی عقل به ما ای داده که از هر ای در هوا بیشتر و تونتر میره این چیه؟ این غربه بر جبر طبیعته به کمک عقل ما وسیلهی مثل شنا نداریم مثل ماهی ولی عقل ای در اختیار ما گذاشته که از هر ماهی در عمق دریا بیشتر میریم و در سطح دریا تونتر و با بار بیشتری اینها همه وسیله است که قلبه بر جبر طبیعت میکنیم به کمک عقل الان دیگران میخوان برند کرات دیگران رو دیگری را کش کنند. عقل به کار بردن ولی بدبختانه ما شرقی ها همش اش به عاطفه و احساسات درک پیش در یک جمله هست میگه توهماد آترش شامنگ شا یه یعنی پیروی از اصول دین باید به کمک دو نیرو باشه آترش یعنی آتش ایمان و آتفه و عشق و علاقه و مننگ هست شا و منش اگر یک راهی میخوایم بریم آتفه میگه برو ولی عقل میگه نرو نباید رفت اگر عقلم میگه برو ولی آتفه میگه نرو نباید بریم آتفه خودشو فلای دیگران میکنه ولی عقل دیگران را میخواد فدای خودش کنه پس به کمک این دو راه صحیح زندگی باید بشه اروپایان بدبختانه همش طرف عقل رو گرفتند و عاطفه نیست در اینا خیلی کمه و ما شرقی ها همش عاطفه و عقل کمه و روزی بشر به درجه خوشبختی میرسه که هم اونها پیلوی از عاطفه را بیشتر عمل کنند و هم ما عقل را یکی از شورا در مدح حضرت محمد میگه خوش خوشکفتان رسول خوش جواز ذره اقلت به اصوم و نماز همون جایی که فرموده یک ساعت تعقل بهتر از هفتاد سال عبادت است اینش که امیدواریم هر کاری که ما میخواهیم به طور صحیح انجام بدیم از هر دوی این نیروی درونی استفاده کنیم هم از عاطفه هم از عقل ما بچه با هزار خون جگر و فداکاری بزرگ میکنیم. این کار عقل نیست این کار آتفه است و بسیاری از کارها عاطفه میگه بکن باز عقل میده نکن اینه که امیدواریم ما ایرانی ها به پیربه از نیاکانمون و فرمان پیامبرمون هر کاری که میخوایم بکنیم دو میزان را در نظر داشته باشیم میزان عاطفه عشق علاقه فداکاری کمک به دیگران خیل و خیلات. همه اینا اصولش بر دله ما ملت عقب افتاده عیبمون ای اینه که عقل کمتر به کار میبریم اروپایان اون چی که خواستند با نیروی عقل و خرد به دست دوردن تمام اکتشافات و اختراعاتی که ما ازش داریم استفاده میکنیم اونها تهیه کردن برای ما و خداوند از اونها راضی تره ولی ما چکار کار میکنیم دست رو دست میدونیم میگیم پروردگاه رو برسون برای ما هر نوع گرفتاری که داریم فورا میشنیم و بگیم خدایا تو خودت برسون خدا چی خواهد گفت خواهد گفت من عقل و خرد دادم به شما چشم و گوش و دست و پا و عقل و دادم که هرچی میخوای دنبالش برید به دست بیارید از تو حرکت از من برکت ولی ما این رو نفهمیدیم. و تازه میگیم اونا کافرن هست اونایی که عقل به کار میبرن کافر یعنی کسی که کفران نعمت کرده بالاترین نعمت خدا عقله کسی که عقل به کار برده او کفران نعمت نکرده او شکرگداری کرده از پروردگاری که عقل به او داده پس امیدواریم ما ملل شرق بیشتر از این با عقل و خرد سر و کار داشته باشیم همش نشینیم دنبال فکر غذا و قدر بکنیم همین چیزی که اشو در همیشه به ما دستور داده شده امیدواریم موفق کردیم نه فقط خودمون تعالیم توشت و نیاکانمون و فرهنگ گذاشتگانمون پیروی کنیم بلکه به هم میانان خودمون و به هم نوعان خودمون هم بیاموزیم زیرا راه رستگاری همین است و بس به طوری که همکیشان اطلاع دارند. ما پنج کتاب دینی داریم اول یاسنا دوم میسباد سوم یاشتا چهارم وندیداد و پنجم خردغشتار قدیمی ترین کتاب دینی ما یسناست البته زمانیکه توش به پیامبری برگزیده شد کاغذ و کتاب و چاپخونه و اینجور چیزهایی نبود و علوم دینی و علمی و فرهنگی و هنری سینه به سینه منتقل میشد یعنی موبد میخوند ها گوش میدادند دوباره تکرار میکرد بعد از هزار سال که عشود در تشت آمده بود و گات ها را پسطلا سروده بود اون وقت بعد از هزار سال خط پیدا شد و یسنا هزار سال بعد از عشود در تشت نوشته شد و این قدیم ترین کتاب های دینی ما حساب میشه که خود گاتای اشودرتوش هم مثل ندینی در وسط اون قرار گرفته دو دوم ویسپرد ویسپر یعنی همه رد یعنی بزرگان دین و سیاست و جمع رد میشه ردان و این کتاب وظایف عمده پیشوایان دینی و پیشوایان سیاست را توضیح میده که چجور حکومت باید کرد حکومت بهتر چجوره و همه تو چجور باید دینداری کرد یا دین را به دیگران آمود و این در ویسپرده چهوم یشتا قدیم سی تا یشت داشتیم یعنی از روز اورمز که ارمز باشه تا انارام انارام یشت بوده یعنی سی یشت داشتیم و این یشتا تاریخ و جغرافی و علوم و دین ایران و پادشاهان، قبل از زرتوش در ایران تمام در یشتا ذکر شده و اگر یشتا نبود کتاب بندهش و خداینامک پهلوی نوشته نمی شد. و اگر این کتاب خداینامک پهلوی نبود شادروان فردوسی از روی اون نمی توانست تاریخ پیشدادیان و پیانیان و به برشته تغییر دراره بعد از این ولویداده داد یعنی قانون و وندیداد یعنی کتاب قانون و البته قانون در هر دوره بنابه زمان و مکان و سطح فکر مردم فرق میکنه پس قوانین وندیداد قوانین دینی نبود قوانین بهداشتی بود و با تغییر زمان و مکان عوض شده و الان کسی توجهی به قوانین وندیداد نمی کنه مگر آدم های متعصب و خشک که خواسته باشن هست چی قدیم بوده همینو به کار ببرن حالا چهار تا از این کتاب ها مال پیش از زمان ساسانیان بوده یعنی یسنا، ویسپرد، یهشتا و وندیداد اینا مال پیش از زمان ساسانیان ولی یک کتاب که خورده اوستا باشه بعد از زمان ساسانیان درست شد علتشم این بود که میدونید در هر دوره ای احتیاج بشر فرق میکنه یک زمانی ما از چشم زخم میترسیدیم میگفتیم یادتونه در قدیم چمارو را مینداختن این می اومد در خونه ها و از دست اشخاص یک چیزی می گرفت تو به اون کسی که مریض شده میدادن میگفتن شاید این چشم نظر رفته برای که دکتر دوا نبود همه متوسل می شدیم به دعا ولی کم کم که دکتر و دوا درست شد البته بسیاری از اینها دیگه از کار افتاد ولی می بینیم در زمان ساسانیان اون موقع وقتی که میخواستن نماز پنج وعده نماز بخونن میباستی عوستایش باج و اوستای کشتی و خرشیدنیایش و مرنیایش و اون پنجگات هر که هست میخوندن و هر روزی یک یشتی داشت از ارمزیش، اردیویشیش تا انارام یشت اینا رفتن پلو، آدرباد، ماراسپند، موبد بزرگ اون زمان، گفتن که ما وقتی که مذاهب دیگر را میبینیم نماز میخونن، پنج دقیقه، ده دقیقه بیشتر طول نمیکشیم، و ما نمیدونیم چه عوسته هایی بخونیم، اگر خواسته باشیم، اینایی که از سابق تا حالا میخوندیم، هر بعد نمازمون دو ساعت وقت میگیره. برای که خود این یشت های بزرگ خوندن یک ساعت طول میکشید یک ساعتم اون نمازهای های بایسته و ما وقت نداریم آدرباد بگو به ما چه عوسته های بیشتر لازمه. موبد آدرباد آمد و این یشت ها را خورده کرد کوچیک کرد مثلا خورشید یشت یه مقدارش برداش کرد خرشیدنیایش مهریش که خیلی بزرگه یه مقدارش برداش مهرنیایش کرد آزریش کردش آتش میایش آبانیش کرد آبزور و مانند اینها ولی بعدا میبینیم کم کم کم کم تعصب زیاد شد و آمدند تمام یعشتا رو اووردن تو خورده عوستا و شما اگر این خورده عوستا قدیم بخانید میبینید بسیاری از عوستا ها توشه که اصلا در کارهای روزانه من نمازهای روزانه کسی توجهی نمیکنه ولی اون زمان خیلی لازم بود مثلا علاوه بر یعشتا آمدن تندرستی درست کردن و شما میدونید تندرستی در اول بسیاری از لغات عربی توش بود تندرستی مشکل آسانی مشکل عربیه عمر دراز باد عمر عربیه قنهای بیشمار عادل بدار این همه عربیه و در حدود 20 سال پیش انجمن موبدان آمد و این عربی هایی که در نمازهای بعدی یعنی بعد از اسلام درست شده بود و عربی هم قاطش بود آمدیم عربیشو بیرون کردیم و فارسی گذاشتیم مثلا که خدا بالخلق فرستاده خلق عربیه ما کردیم خدا با مردم فرستاده عمر دراز باد گفتیم زندگی دراز باد و ما ندهیم بعدا بدونید قرنها از کردم خورد عوستا هفت سینه به سینه منتقل شد بعد لحجه زردشتیان ایران عوض شد یعنی اوها را ای می کردیم. به خوب می خیب به چون شد میگیم چین بو به خون میگیم خین و مانند این و در نتیجه اینای که اوستا حفظشون بود اشم رو میگفتن اشم روهی یا تا رو میگفتن یا اهی یا تا شد یا اهی و هوخت و هو جای خودش موند اما هوخت کردن یخت هواشت جای خودش مند این هم باز یه اشکالی بود که بعدا شادروان رشید شه اون کتابی که از رو اصل کتاب اوستا هندوستان درست کرده بود عشم بحق و کرده و ما مامادیم مام و خورد اون جایی که لازم بود اصلاح کردیم ولی بعدا یک ادهی آمدن در خورد عوستا افتون شافریدون نوشتن. و این درست شافریدون کلمه خیلی قدیمیه از اسامی پادشاهان پیشدادیه و معروفه که پدرش از پزشکان معروف ایران باستان بوده و همیشه پدر علوم خودش رو یاد پسر میداد. حالا این افزون شافریدون میبینیم می بینیم سر تا پا عربیه یا جبار یا ستار یا سطر امانتدار بی غم تو کنی در حال این غم دلش بردار به حق خاجه افتخر این کلمه عربی به حق نوری که در گنبد ارشوت میتابد و از این حرفو باز میبینیم اینو اضافه کردن و گذاشتن تو کتاب خورده اوستا بعد اوستای جامعه نو پوشیدن افزون جهت بیماری اوستای باطل شدن سیرها اوستای چشم زخم به چشم مردم میکو آمدن جهت رفع بیماری اوستای خواستن اوستای توانگری و ایمانی اوستای عچسه کردن اوستای چمش اوستای ناخنچیندن عوستا خواب و بد دیدن و مانند اینا و بقدری کتاب خورده عوستا را مغلوب کردن که خیال میکردند هرچی بر قطر خورده عوستا اضافه بشه چون کتاب دیگر در دست عوام نبود فقط کتاب بود خورد و اگر از غیر زردشتی کسی می اومد پرل زردشتی ها کتاب دینی تون بده اینا یه ای خرده هرستا را و بعد بیدیم ادعه ایراد گرفتن که این خورشید هایش و مرنی هایش و مانی آب و اینا چیه؟ اینا که همه طبیعت پرستیه عوستای خواب بعد دیدن عوستای عطس کردن اصلا تمام عمرمون باید گرفتاره اینجور چیزایی بشم همه اوستا بشونیم بخونیم و به کار روزانه که نمی پردازیم این بود که انجامن موبدان اعلام کرد که از این به بعد کسی حق چاپ کتاب خورد اوستا نداشته باشه و اگر خواست چیزی بنویسه بعد از نوشتن بیاره در انجمن موبدان تا اون وقت اگر صحیح دیدیم چاپ کنه وگرنه چاپ نشه حالا وقتی میر نیایشو که اصلش از میریاش بوده میخواستن تو خورده عوستا بیارن میدونید یک زمانی پرستی در ایران روای داشت. و تا آخر تا آخر اشکانیان پرستی روای داشت و مر را خدای بزرگ میدونستند. و اون موقع اگر می مر میر بینای کله دانای کله توانای کله کسی نمیفهمید. عقل مردم اون زمان نمی رسید. از این جد میگفتند میر دارای هزار گوش و بیور چشمه یعنی yani هزار تا گوش داره ده هزار تا چشم داره این که میگفته وقت مردم میفهمیدن هزار گوش داره یعنی yani هر گوشش یه گوش دنیا هر که هرچی بگه میفهمه ده هزار چشم داره یعنی yani هر جا کسی کار بدی بکنه ولی زیر زمین هم باشه اون می بینه و اینجور عبارتهایی فقط برای مردمان قدیم بود که درک کنن شنوای کل چیه بینه کل چیه ولی امروز دیگه لزومی نداره حتی قرن قبل از اینکه که و به پیانبری برگزیده شد صفت اهورامزده هر توان یعنی توانای کل هر آگاه، دانای کل هر خدا یعنی صاحب و مالک چیز. البته خدا میدونید دونید صفت اهورامزده مثلا خداوند بستان نظر کردید یعنی صاحب باغ. قدیم وقتی که به پدرمون نامه می نوشتیم مینوشتیم خدا وندگارا به پادشاه که مینوشتیم میگفتیم خدایگانا پس خدا یعنی صاحب و مالک و پروردگارو اینجور چیزایی و از روی این خداینامک پهلوی درست شد که بعدا به درستی شادروان فردوسی این را تبدیل کرد به شاهنامه چون خدا به منیه فرمانروام است و خدای نامه کردش شاهنامه پس اگر یه هشتا نبود خدای نامه نوشته نمیشد اگر خدای نامه نبود شاهنامه نوشته نمیشد و الان ما از تاریخ گذشته ما خبر نداشتیم و اینها همه مرهون نیاکان ماست که در هر دوره و زمانی اون چه لازم بود به زبان روز به مردم حالی میکردن ولی چون سطح فکر مردم و محیط زمان و مکان مرتب عوض میشه باید هایی که میزنیم مطابق روز و فهم مردم باشه مثلا امروز میبینیم خود رهبر از این کشور ما سفارش میکنه به پیشوایان دین و میگه شما وقتی باید جواب جوانان و شاگردان مدرسه و افراد تحصیل کرده را بدید، مطابقه علم امروز باید جواب بشون بدید. اگر اون که در حوزی علمی قوم و مشهد یاد گرفتید مال 1400 سال پیشه اگر خواستید، حالی بچه های امروز کنید بتون میخندن پس باید بچه های امروز سوالی که میکنن جواب را مطابق علم و دانش و فهم و عقل امروزه بهشون جواب بدید پس باید الان در امریکا در اروپا زردشیانی که رفتن اونجا و به پجوهش و پویش و یویش فرهنگ ایران باستان و کتاب های دینی زرتشتیان پرداختن دارن ایراداتی مخصوصا به کتاب خورده اوستا می گیرن. و در آینده باید علمای دین با هم بدشینیم و اونچه که لازمه نماز روزانه است توش بنویسیم یا را دوباره باید برگردونیم به کتاب آفری آفریقونی و یشتگاهانا اینا مخصوص موبدانه اون یک کتاب جداگانه باشه اون که موبد باید یاد بگیره کتاب جداگانه باشه یشتار را جدا کنیم و برای مردم اون نمازهای بایسته بدون طبیعت پرستی اینها ها را باید بنویسیم که جوانان امروز راضی بشن از اونچه که می خوانن. امیدواریم این را در نظر داشته باشید و دیگر کسی خیال نکنه ثواب میکنه بره یه موشین خورده عوضتهای گذاشته را دوباره تکرار کن